سخن میان دو دشمن چنان گوی که گر دوست گردند شرم زده نشوی. میان دو کس جنگ چون آتش است، سخن سخنچین بدبخت هیزم کش است. کنن دین و آن خوش دگربار دل، بیان در میان کوربخت و خجلد. میان دو تن آتش افروختن نه اغلست و خود در میان سوختن در سخن با دوستان آهسته باش تا ندارد دشمن خونخوار گوش پیش دیوار چه گویی هوش دار تا نباشد در پس دیوار گوش